این شروع بشرا جمیعا و این ثروع السلام علیکم و الله و برکاته گرامی های گرامی ببخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب می داریم به داشته های امشب احتفو احلا نشید احتفو احلا نشی. ذکر میدان جهاد بازار معاملات میانی بنده و پروردگارش است جایی است که متاع آن جان و مال از طرفی بنده و بهیشت از طرفی الله سبحانه میدان جهاد میدان کارزار کشتن و کشته شدن است میدان بمباردمان و میدان باران است و میدان شهادت طلبی است پس ای بنده ای الله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 موادا به گروهی بیروی کی شریعت الله را اجرا نمی کنند موادا به گروهی بیروی و در روز قیامت در جواب الله ناتوان بمانی هنگامی که از تو سوال شود چرا جنگیدی و بیگویی در راه تو پس الله بگوید دروغ گفتی بلکه برای تعسوک به برای شهرت جنگیدی بس برحذر باش ودقيق انتبه انتخاب کن. <متحدث> للمعية من تا منهج تو فکری سیاسی، نظامی و پس منظر نظام و نظامداری در مفاهیم مشارقی در کل، فرقه های بسیار زیاده بین امارت و خلافت وجود داره امارت به اینوان یک تشکل قومی و به اینوان یک تشکل سیاسی با رنگ دینی قد علم کرد و نقطه را گذاشت که ما علیه کفار مرتدین مبارزه میکنیم دین الله را تطبیق میکنیم ولی عمل ثابت ساخت محض ادعا داشتند. بن برنامه را یک شنبه شب ها و سه از رادیو صد خلافت فراموش نکنید احمدك اللهم ربي واسألك على رتب الشهاده واستغفرك لما تعلمه مني وانت عالم الغيب والشهاده واشهد ان لا اله الا انت و از تعود و عند كهذ الشهد وصللي ووسلم على مله السيادة والقيده والرضاد ووع عليه وصحبه هل الجهاد والعباده اما بعد همه شما برادران میدانید که منات کفر امروز بسیار زیاد هستند و اسباب شرک امروز منتشر شده روات شده از رسول الله ص الله عليه ووسلم، در روایت امام حاکم و فرموده که صحیح الاسناد می باشد از ابو هریر رضی الله تعالی عنه همان رسول الله صلی الله علیه وسلم قول الله تعالی را قراءت کرد اذا جاء نصر الله والفتح و الفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجه فرمود قطعاً خارج می از دین به صورت گروه گروه همانطوری که داخل شدند به صورت گروه گروه و همچنین از امام احمد رحمه الله روایت شده از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمود همانا مردم قطعا در دین داخل می به صورت فوج فوج و خارج می از آن به صورت فوج فوج و شما امروزه بسیاری از مردم را میبینید که از دین الله تعالی به صورت فوج فوج خارج میشوند. ولا حول ولا قوة الا بالله اسبابهای متعددی وجود دارد و مناطات زیادی وجود دارد کسی داخلش شد پس قطعا مرتد شده از الله تعالی عافیت میخواهیم. سحر و جادو در هر مکان منتشر شده رفتم به سوی عرافین و تعویز نویسان و منجمین و تأییدشان و تصدیقشان در چیزی که میگویند در دورترین مکانها منتشر شده. همچنین عقیده علمانی با همه تیفها و رنگها و لیبرالی و دموکراسی و اشتراکی همه اینها از منهجها و مناطات کفری و گمراهی هستند. که هزاران نفر از مردم زیر سایه آن قرار گرفته اند. و اگر غلوب نباشد میگوییم میلیون ها نفر و شرک قبور هم منتشر شده در بین مردم حالا چه عرب باشند و چه عجم باشند اینها فقط هایی چند هستند که زده شد از درهای کفری و رنگهای کفری و اشکال کفری که هر کس داخل آن شود از اسلام خارج می شود اما در بین مردم کسانی هستند که باب تکفیر را می بندند و می گویند تکفیر را به علما بسپارید و گروه بعدی هم که باب تکفیر را باز می کنند و مردم را با شبه تکفیر می کنند مردمی وجود دارند که منهج افرات را در تکفیر پیش گرفتند و مردمی هم وجود دارند که منهج تفرید را در پیش گرفتهاند. شیخ الاسلام می‌فرماید، فرماید همانا شیطان برایش مهم نیست که مسلمان در چه گمراهی غوتور می شود. چه در این گمراهی بیفتد و چه در آن گمراهی بیفتد. چه افراد و چه تفرید چه در ارجاع و چه در غلو این گمراهی است آن هم گمراهی است. پس مسلمان باید در راه ثابت سیر بکند و بر دلیل از طرف پروردگارش و بر بسیرت در پرتوب قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت بکند. قطعا قضیه کفر و ایمان تأثیرات بر عمل انسان دارد، تأثیرات بر خون انسان دارد، تأثیرات بر آبروی انسان دارد، تأثیرات بر انوال انسان دارد و غیر زالد. لازم است که مسلمان این چیزها را بداند و بفهمد مردمی وجود دارند که توسعه در تکفیر می کنند مردمی هم هستند که سرعت در تکفیر به خرج می دهند تسانی وجود دارند که سرعت به خرج می دهند در احکامی که شاید سلف صالح امت در مقابل این احکام توقف کردند از امام مالک امام دارالهجره سؤال کرده شد در مورد مسئله ای. فرمود اجازه بده که تحقیق کنم در مورد آن برو فردا بیا وقتی فردایش آمد فرمود رهایم کن تا نگاه کنم به مسئله برو فردا بیا رفت و فردا آمد به تاخیر می انداخت تا اینکه الله تعالی برایش مسئله را روشن میکرد حالا اهمیت تکفیر به چه اندازه است مساله ای که ربط به اسلام و کفر دارد به مراتب بسیار مهمتر از مسائل دیگر است مسئله ای که به توحید ربط دارد به شرک و تندید ربط دارد پس شخصی در امری عجله میکند چه بسا بعد از عجله کردن پشیمان شود که این پشیمانی سودی برایش نداشته باشد چه از نظر اجرای بعضی از احکام در این حکم صادر شده و چه در روز قیامت که باید جواب پس بدهد پس باید ضوابط تکفیر و شروط تکفیر را شناخت آن چیزهایی که در شخص باید جمع شود و بعد از آن حکم صادر شود و همچنین موانع رو باید شناخت و اهمیت این علم جلیل را باید شناخت چه شخص عالم باشد و چه غیر عالم چه بسا عالم هایی هستند که باب تکفیر را بسته اند و در کتابخانه خود نشسته اند و به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتناعی نمی کنند که می فرماید در تبرانی این حدیث وارد شده و عالمانی آن را صحیح دانسته و اشهد المحسن بانه محسن وعلى المسيء بانه موسی. و این باب را به کلی بسته اند و شده اند بر عقیده جهم ابن صفوان حتی بدتر از آن از آن طرف مردمی هستند که دیگران را با شبهه می میکنند اینجاست که میگوییم بهترین راه راه وسط است نبی صلی الله علیه و سلم میفرماید قریش اوسط العرب و بنو هاشم اوسط قریش و انا اوسط بنو هاشم همانطور که این حدیث در مسلم آمده است اوسط یعنی اعدل یا افضل كما اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید الفردوس اعلى الجنه یا وسط جنت و معنای این کلمه این نیست که بین راست و چپ و یا بالا و پایین بلکه معنای این بهترین مکان بهشت است و ما میخواهیم که از بهترین و کاملترین ها باشیم بی اذن الله تبارک و تعالی چرا که بسیاری از مردم در این ابواب گمراه شده اند مسئله تکفیر را باید تمامی مسلمانان عمل بکنند حالا چه کافران اصلی باشند و چه مرتدین باشند قال الله تبارک و تعالی قل یا ایوها الكافرون این آیه خطاب به نبی می باشد و الله تعالی نمیفرماید فرماید قل یا قریش و یا نفرمود قل یا عرب و یا نفرمود قل یا ایوها الناس بلکه فرمود قل یا ایوها الكافرون و آنها را با نام خودشان خطاب کرد و توصیف کرد. آن زمانی که به آن متلبس شدند و قل نمازی است و نمزارع بلکه فعل امر است و حکم وجوب را دارد. و امر به نبی الله صلی الله علیه وسلم امر برای امت اونیز می باشد. زمانی که کسی نگفته این خاص نبی می باشد که کسی چنین چیزی نگفته. همانطور که علما فرموده اند که مراد در این آیه به صراحت تکفیر کردن کافران هست و تصریح کردن کفر ایشان از آن جمله کتاب سبیل النجات والفكاک ابن عتیق را میتوان نام برد از موالات مرتدین و اهل اشراق و در بعضی نسخه ها المرتدین والاطراق در صفحه شصت صفحه این کتاب موجود می باشد. قال الله تبارک و تعالى و يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقه. فإن جامرادز العروه الوثقه لا إله إلا الله می باشد. همونطور که در تفسیر آمده است. پس اگر شخصی یافت شد که ایمان به الله دارد ولی کفر به تاغوت ندارد بدانید که او در حقیقت ایمان به الله نیاورده است. چرا که کفر به تاغوت شرط برای ایمان به الله تعالی می باشد. اما معنای کفر به تاغوت چیست؟ شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میفرماید که کفر به یعنی اینکه کل عبادت را برای غیر الله ترک کنی و باطل بپنداری حالا جن باشد یا بشر باشد یا درخت و یا سنگ و یا خورشید و یا ماه و غیره و همچنین شیخ در رسائل و شخصیه در جلد دوم می فرماید که کفر به یعنی اینکه عبادت غیر الله را باطل بدانی و اهل آن را تکفیر بکنید و این اصل اصیلی از اصول دین می باشد شیخ همچنین وصیت می کند موحدان را که به اصل دین خودتان تمسک بجوید و آن شهادت لا اله الا الله است که باید معنایش را بدانید و اهل آن را دوست بدارید و با آنها برادری بکنید اگر چه از شما بسیار دور باشند و تواقیت را تکفیر کنید و با یاران آنها بغض داشته باشید و بغض داشته باشید با کسانی که آنها را تکفیر نمی کنند و یا حتی بگوید الله ما را مکلف به آن نکرده که همان این شخص به الله تعالی دروغ بسته است بلکه الله تعالی او را به تکفیر تواقیت مکلف کرده است همانطوری که این حرف نقل شده از ایشان در کتاب دورر در جلد دوم و صفحه 119 امروز ما میشنویم در تلویزیون و برنامه ها و شبقه ها که الله تعالی از شما نمیپرسد که چرا فلان کس را تکفیر نکردی و سعی بران دارند که این باب را ببندند و یا میگویند این را بسپارید به سپارید به عهده علما بدانید که چنین اشخاصی در زلالت فرو رفتهاند آیا این کلام شیخ از اجتهاد ایشان هست که نقل کردیم یا از رعی ایشان هست نخیر بلکه گرفته برگرفته از نص سریح کلام الله می باشد و تکفیر کافرین و مرتدین از هدایت انبیا و مرسلین می باشد الله سبحانه و تعالی نبی را برایمان الگو اولگو معرفی کرده و او را برای من اصفه حسنه قرار داده ابراهیم علیه السلام زمانی که به قومش کفت این براه منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ابراهیم علیه و والسلام قبل از براءت از اسنهم از اهل آن براءت میکند شیخ سلیمان ابن زحمان میفرماید که بکم ای کفرناکوم و از صفات بارز رسول الله صلی الله علیه وسلم و و انبیا این بوده که آنها کافران را تکفیر میکردند امروز کسانی را می‌بینیم که می‌گویند ما به خاطر مصلحت دعوت کسی از مردم را تکفیر نمی‌کنیم و یا به خاطر عدم نفرت مردم از دین و غیره کسی را تکفیر نمی‌کنیم اگر آنها اینجا مردم را از دین بیزار نمی‌کنند به زمین خودشان اما از آن طرف در ارتداد را بر مردم باز می‌کنند مثل دشنام دهنده به الله تعالی نعوذ بالله یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم یا استهزا کننده به شراعی دین آیا پیامبر همچین حرفی زده کلا و قال الله تبارک و تعالی فی سورة الكهف اکفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا کفرتا استفهام توبیخی هست ببینید که چگونه مرد صالح آن کسی را که کفری کرده بود و یا ناقضی از نواقض اسلام را انجام داده بود تکفیر کرد و حتی مشکوک هم نشد از تکفیر کردنش و الله تعالی این قصه را تا قیام قیامت در قرآن ثبت کرد به خاطر چه؟ به خاطر عبرت گرفتن و احکام گرفتن همچنین قصه انتشار افتداد در زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه برای عبرت گرفتن می باشد. برای کسانی که به قوانین وضعی حکم می و یا اراده حکم کردن به قوانین وضعی را دارند. به جای قوانین شریعت. و تکفیر اینها از بدیهیات اسلام می باشد در نزد صالحین و صدیقین. تکفیر کسانی که عبا می ورزند از شریعت و یا محاربه می کنند با شریعت تکفیر آنها و جهاد با آنها از بدیهیات دین میباشد. باشد همانطوری که در تاریخ تبری این داستان آمده است شیخ محمد ابن عبدالوهاب میفرماید در دور رستنیه جلد ده و صفحه هشت آنها امروزه مجادله می کنند می آنها امروزه مجادله می کنند با یک شبهه و آنها میگویند بله این حرف حق هست و این دین الله و رسولش می باشد به همه اقرار می کنند جز تکفیر و قتال و می این عجیب است که اقرار می کنند که اینها حق هستند ولی تکفیر نمی کنند کسانی را که عبا می کنند و یا قتال نمی کنند با کسانی که ابا می کنند. و همچنین شیخ می فرماید این نمعودین لی اجل تکفیری والقیتد. علامه ابن عقیل حنبلی در کتاب الفنون می فرماید اگر جایگاه و یا جایی که اسلام در آنجا پیاده می شود در هر زمانی بشناسی پس به دهام مساجد نگاه نکن در کجا مساجد جماعت زیادی دارد در کدام منطقه مسجدها جماعت زیادی دارند و یا به صدای لبیک ها توجه نکن بلکه نگاه به برخورد آنها با دشمنان شریعت بکن ابن عقیل حنبلی شخصی که بزرگترین کتاب را نوشته است که بیش از حسد جلد می باشد ممکن است کسانی بگویند استاد من بیشتر از حسد صفحه کتاب را نوشته است و افتخار بکنند به اساتید اساتید خودشان ولی این را بدانم که ابن عقیل حنبلی شخصی که چون این حرفی زده بیش از حسد جلد را کتاب جلد کتاب نوشته است و می فرماید حمت من در طلب علم در سن هشتاد سالگی بیشتر از همتم در سن بیست سالگی می باشد. پس تکفیر حکم شرعی از احکام شرعی می باشد و تکفیر جز مسائل شخصی نیست. مثلا کسی بگوید اگر مرا تکفیر کردی تکفیرت می کنم. و از این حرفا و این خطا هست. چرا که تکفیر حق شخصی نیست و حق شرعی برای الله و رسولش می باشد. و نباید مسلمان در چیزی که الله و رسولش کف دانسته اند و یا وصف کف کرده اند مسلمان توقف بکند. همچنین نباید بنده ای از بندگان خدا حکم به کف بدهد در چیزی که الله و رسولش چنین حکمی نداده اند. تکفیر مرتدین و مشرکین عبادتی مثل سایر عبادات باشد. و درست نیست که ما قومی را به اسم تکفیریین نامگذاری کنیم مثلا میگویند تکفیریون انگار میگویند مسلون و یا مثل اینکه میگویند الحاجون و یا المجاهدون این درست نیست بلکه باید به کسانی که بدون فهم تکفیر میکنند گفت غلاطه در تکفیر و یا بگویی هوای خوارج را دارند ولی اگر به عبادتی و یا شعائری توصیف شود این صحیح نیست پس کسی که برای من کفری ظاهر کرد ما هم تکفیرش را ظاهر میکنیم کما اینکه امام نووی میفرماید نحن علینا بالظواهر والله يتولى السرائر امام بربهاری در کتاب شرح السنه شرح السنه ناقضی از نواقض اسلام را ذکر میکند و میفرماید اگر کسی چیزی از این نواقض را مرتکب شد پس واجب است بر تو که تکفیرش کنیم تکفیر کافرها چه اصلی باشند و چه فرعی از مستحبات نیست بلکه از واجبات می باشد اینهایی که بیان کردیم از فوائد خود تکفیر بود اما احکامی که بعد تکفیر بر آن مترتب می شود زیاد و دیگری دارد که چند مثال می آوری. مثلا در بحث احکام ولایت حاکم مسلمان حرام است بر توی مسلمان که اطاعت نکنی از حاکم مسلمان بلکه باید با او جهاد کنی بر علیه دشمنان و با او حج کنی و پشتش نماز بخوانی چه حاکم فاجر باشد و یا صالح باشد. ولی اگر کفرش برایت آشکار شد دیگر برایت حلال نیست از این چیزها. و باید از او براعت بجوی و بجنگی با او. و سعی کنی او را از حاکمیت خلق کنی و کافر را برای مسلمان هیچ ولایتی وجود ندارد حالا چه غازی باشد و یا پدر باشد و یا حاکم باشد همچنین در احکام جهاد بین کافر و مسلمان فرق وجود دارد و کافر کشته می شود اموالش به غنیمت گرفته می شود زنش به کنیزی گرفته می شود ولی اگر مسلمان باقی باشد زنش به کنیزی گرفته نمی شود و انوالش غنیمت گرفته نمی شود و پشت کننده ها پیگیری نمی شود و بین ما و مسلمانان باقی احکام شرعی حکم می کند اما که علی رضی الله تعالی عنه فرمود اخواننا بقو علینا همچنین در احکام قضا و در احکام نکاح و در احکام شهادت و همه بین کافر و مسلمان و یا مرتد مسلمان فرق وجود دارد. و در احکام جنایز همچنین بین مسلمان و کافر فرق وجود دارد. اگر مسلمان باشد نماز خوانده می شود و غسل داده می شود و کفن کرده می شود و در مقابر مسلمین دفن می شود و اگر غیر مسلمان باشد نه نماز دارد و نه کفن دارد و نه غسل و نه دعا و نه استغفار و نه در مقابر مسلمین دفن می شود. بلکه از سنت های محجور این است که به سر قبر کافر به جهنمی بودن او شهادت داده شود. این حدیث در تبرانی آمده است و آلمانی آن را صحیح دانسته است. همچنین در احکام بیو بین مسلمان و کافر و یا مرتد و مسلمان فرق وجود دارد. برای مسلمان جایز نیست که بر معاملهش معامله کرده شود ولی برای کافر یا مرتد برعکس جایز است. برای مسلمان جایز نیست که بر خواستگاریش خواستگاری کرده شود اما برای کافر یا مرتد برعکس جایز است همانطور اما که امام ابن رجب هنبلی در کتاب جامع العلوم و الحکم به آن تصریح می کند. میکند میفرماید فالکافر علی خلاف ذلک وقد نص احمد علی ذلک و ادله برای این موارد بسیار است الله تعالی می فرماید واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بریء مما تعملون چرا الله تعالی نفرمود بگو من بری از شما هستم بلکه فرمود من بری از عمل شما هستم پس این احکام جاری میشود شود به خاطر جدایی راه مجرمین و مؤمنین و به خاطر تمهیز بین این راه و بین آن راه و عدم خلط بین آن راه قال الله تبارک و تعالی افنجعل المسلمین کل ما لكم کیف تحكمون؟" و همچنین در جای دیگر می‌فرماید لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة. اصحاب الجنة هم الفائزون پس تدفیر و تفسیق و تبدیع از اموری هست که جزء احکام است و واجب است که ما در مورد اینها علم کافی داشته باشیم و جوابات شرعی و مرعی آن را یاد بگیریم صلی الله علی محمد و علی آله و اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک